معاینات وصل سروم در صورتی پزشک فقط زن باشه حالا پزشک فقط مرد باشه؟ ها مریض بیمار است. اگر مریض, تنها مریض خانمی هست داری بیمار کے که پرستار خانم زیاده وقت زیاده برای پزشک مرد جایز نیست دست بزنه وقتی که هست پیزش... پرستار داری ما خانم داری جائز نیست که مردی اونها رو دست بزنه متاسطفانه فصاده خیلی زیادی اینجا صورت میگیره. برای یک فشار سنج فشار خونو بگیرن بعد خانوم بازو بزنه بالا در حالی که فشار خون از بالا لباس معلوم میشه اصلا نیاز برای از بازو نیست بالا لباس هم بازو اصلا بالا نکنه مشخص میشه اما چون که فی قلوب مرازون در قلبها مراز هست وی بی دست ویرون این واقعیتی حالا بپرسید، از تمام بپرسید که فشار خون از بالا پارچه مشخص میشه نیازی برای کشف عورت نیست اما دستهار رو تا بازو بیرون کتاک من فشار تو ببینم اون خواهش نفس هست که داره وادار میکنه. چشمه رو درویش کنن و در این گناه ها مبتلا نباشن تا که این همی گناه با ناموس مردم آخر که گناه بزرگی در آمال نام سرط میشه.